عشق هایتر را خبر کن. با دلم گفته کنم شروع گریه از که هست که ما تنهاست که کور گر گرفته تن باق که تشنه لب خود دخیل است. همه دهان ها تو را صدا می دهان ها پر نام توست ای سرب به ای ایست داده آقای رنج های عظیم راه ها به تو می پیوندند فوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند تو ما را فرا گرفته ایم. که ما وارسان سجادی به وسعت این عالمی همه تو را صدا می زنند دهانها پر نام توست دافست بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکه یا عبا عبدالله سلام میگم به همه بیننده های خوبمون خانوم ها و دوستان عزیز آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدایی امروز ما یک سلام ویژو مخصوصم به همه دوستان خوبی که تکرار این برنامه رو در صبح میبینند آرزو میکنم که اونها هم روز خوبی رو براستنسشان با خدمت حجای قرائتی عزیز هستیم آقا سلام علیکم و رحمت الله خیلی خیلی خوشحالیم سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم حجای قرائتی خدمت شما هستیم هفته گذشته و جلسه قبل با حجای قرائتی در مورد اسراف صحبت کردیم اسراف آب و اساساً اسراف در زندگی ما که چقدر ساده است کنارش رد میشیم و چه برکاتی رو شاید از دست می‌دید امروز هم حجای قرائتی قرار هست که از اصراف برای ما بگن دو ما مشتاق صحبت هایی شما هستیم مجای دارت خواهش میکنم بفرمین امروز میخوام بیشتر از آب بگم خیلی خوب آب طور نیست نه خیلی بسم الله الرحمن الرحیم الهی انتقنی بالهدا و الحمن تقوی ما چیزهای رو یه خوده قرآن یه آیه دارم میگه فلین زال الانسان الات آمه یه دقت کن تو قضایی که میخوادی با یه دیوان آبو مثلا یه خودو دقت کنیم توش بعضی گفتن که در یک دیوان آب به قدر انزجی خدا گذاشته که میشه یه شهر رو برق داد ا در ژاپن تو یک سطل آب و گوجه گذاشتن 50 کیلو گوجه برداشتن اه. چطور ممکنه؟ این آب انگار شعور داره چون میگن اگر کلمات قشنگ و حقی رو بگی ایمولگولاش پیشت میشه jag har sett att Jag är att قدرت شما زیاد بونیم به آب مهمه آب هم وسیله قهره هم وسیله مهره وسیده قهره فرعون قرقون کنه فرعون قرقون کنه وسیله حدیث داریم میگه آب میگه من لشکر خدام شما ساده من نگاه نکنید به امر خدا کودک رو در یه نگر میداره به امر خدا فرعون تو دریا قرق کنم قرق کنم کوده که بی دست پا رو حفظش میکنم فرعون با دست پا رو قرقش, قرقش میکنم حدیث داریم که آب میگه من لشکر خدا همه چیزی همه چیزی لشکر خداست آب وسیده قهره وسیده مهره میگه اگر شما راهتون راه درستی باشه ما مَاً غَدَقَا وانا انهم لابستقاموا على الطريقه اجل کسانی که رو راه حق مقاومت کنن ما انقدقا آب فراوان بهشون میده از حدیث از امام پرسن آب چه مزه‌ای می‌کنه ما باشیم چی جواب میدیم از امام ورسن مزه آب چیه بله هم فهمون مزه ای آب مزه ای حیاته از آب صاف سبزی سرخی تونجایی که مثلا 5000 درخت درخ نو انگور شنده نش آسونه بابرکده نش سخته به دیگه حالا ای کارا چیزا که تو کتابا هست این همه انواع ذات بهجتن قرآن میگه عربیه که میگم قرآنه ذات به بهجتن قرآن میگه یعنی آب حدائق باقها ذات بهجه دل نواز مخضره سرسبس کل شیئن حی کل شیئن و جعلنا من الماء و جعلنا من الماء کل شیئن حی یعنی هر چیز زنده از آب آمه خود انسان از آب آفرده میشه تمام هنرمندا باد رو جسم نقاشی کنن این خداست که رو آب نقاشی میکنه تمام هنرمندا باد تو روشنای هنرمنده کنن این خداست که فی ظلمات ثلاث تاریکی رحم و تاریکی ست و تاریکی تو تاریکی تو تاریکی اونجا رو یک تک سلول داره نقاشی میکنه انسان از یک تکسلول یک انسان میلیون ها تکسلول ازش خارج میشه یکیش میشه انسان تو تاریکی روی یک تکسلول نقاشه میکنه یه صور کن فلرحام خدا تصویر برد اونا بیشین حساب کنیم چه خبره؟ چه خبره؟ بلد. نقل شد علامه تبا تبایی گاییم میبر برمیداشت مثلا این دنستی برمیداشت بر مدتیم تو بیسیمه نگاه میکن مبهود ای که قرآن گفته و این تعدو نعمت الله لا تحصوحان نگفته و این تعدو آلا الله یا این نعمه الله یه نعمت الله یعنی یه نعمت هم نمتونه بی... چیز کنید یه نعمت هم نمتونه سا کنید یه نعمت هم دقیقت کنید نمیتونه حسابشو بکنید یکی از اساطی دانشگاه میگفت من رو نون حساب کردم دویس و و هشت گروه کار میکنن تا ما نون میکنیم گفتم دویس و شست و هش گروه کیان اینا؟ کشابه از تولید یندون میکنه میره آرد میشه آرد میشه نون میشه سه گروهه؟ گفت نه شما این کشاورز سمپاشی داره، شخم داره، شخمش شخ تراکتور میخواد تراکتور از چند قطعه از اون قطعه رو کی زاخته؟ بعد نمیدونم سیلو، سیلو نم کامیون، کامیون از چند قطعه لاستیک جاده‌اش، میگه اینا رو نفت دست به دست هم بدم بعد گفتم پس حالا آدم میفهمه یا ای یالنسه، میگه اگر یه نعمت هم خواستید بشمرید نمی‌تونید. و ان تعودو نعمت الله، حالا کسی هم نیست دست مچ بگیره استاد دانشگاه. ممکنه بگی آقا اشتباه کردی؟ پیش از این حرف هست پیش از این حرف هست یعنی من الان یک کلمه که میخوام بگم ایتونی که لبه متکومی دم حرف مزنم چند رقم سلول چند رقم کار باد بکنن تا من یک کلمه رو به شما منتقه بکنم اصلا این چیزای ظاهریه دیگه و این کاملون نعمت بست. الله لا تحصوحان و ازا خیلی قرآن میگه و از نعمت الله آلا الله داریم نعمت الله داریم امام حسین در دعای عرفه میگه اگر تم با تمام وجود تمام عمر ما کنم شکری یک نعمت هم نتونه آنجام یا یه با دیگه میگم با تمام وجود تمام عمر ما خرز شکنم شکری یک نعمت هم نتونه آنجام بیدم شکری یک نعمت بله زرافت ها دو سه مثال پیس این چشم ها از پیه با دو سه مثال پی رابطه اینسان با کل حسی قطع میشه. شما چه شد ببن؟ تمام شد. بین انسان و هستی دو مثال پی. واسطه است. واسطه است با, با یه زرزه گوش زبان نوت سال حرف میزنه. در عمرش هم درد نمیگیره. با استخوان میشنویم. با پی میبینیم. با گوش حرف میزنیم. این امت رو بدونیم یکیسی بود رسیدیم به جای کفش ها شکن بود که خب همه با ف... کفش میرفتن رو قالی دم ایش کفش ها یه دم بهش خندیدن به من گفت آهای غلطی یه مدتی قالی بافی کردم چون خودم قالی بافی کردم میدونم که ای قالی جوری درست شده دلم نمیاد پام بزنم رو کفش با کفش بعد بوالدی چون ای خودم یه خورده قالی بافتم این مهمه میگن پیرمردی خواست بمیره به بچاش وصیت کنه که اگر خواستید خونه رو بفروشید سردرش رو خراب نکنید بسازید بعد بفروشید گفتن دلیل گفت چون من می‌خوام این بچهای من سردر رو خراب کنن ببینن فقط یه سردر خواسته باشن بسازن چقد باد تو در و سرای در بفهمون که این خونه چه جوری درست شده تو علیکی به تراز ندان بنده الان حرف میزنم کوتکاشو بلال خورد من به پلواش رسیدم خدا رحمت کند ابو ترابی رو ما با ایشون از اول نوجوانی با هم بودیم خدا رحمت از 17 سالگی تقریبا خب دستاشون اصیل بود و اون کوتک بخود منم پولو وقتی آزاد شد گفتم من شرمنده شما هستم کتکاش ماله تو لذتاش ماله ما من چه کنم دستم خالیه گفت من ثواب سه ماه شکنجه ما میدم به تو تو هم ثواب سه تبلیغات ده بده به ما گفتم شکنجه تو اخلاص توش بوده من پشت دوربین معلوم نی اخلاص ده آدم پشت دوربین که منطقه از کنه دوربی آدم عوض می دانه نماز می یه مرتبه به وسط نماز متوجه شد دوربین اومده جلوشم مرتبه به وسط غنز شمجنی کرد در هر حال دوربین پشت دوربی کنمشه آدم مخلص بشه الا اولیای خدا گفتم من اخلاص نیست تو کارا یکیسی به یکیسی گفت من به عدد مواز سرم کامکت می کنم تو بارو کرده کالشو بس چند کچل کچل مو نداده گفت در این حال اگر ریام هست یا غیر خودم هست من سه ماه تبلیغات ها رو میگرم سه ماه شکنجام رو میدن یه همچین معامله تو دنیای خیال کردم با اون خب من کالا سرش گذاشتم به هر حال نعمت خدا رو بعد قد بدونیم به خصوص نعمت آب همین نعمت زمین حدوداً شهست بار تو قرآن اسم آب برده شده هر دفعه هم اسم برده شده با یک یعنی با, از شهست زاویه <تصفيق> چه حال مثلا آب در قرآن کدشه یا بحث فنی میشه که حالا دانشنامه یک کتاب میشه به درد تلویزیون نمیخوره آب در قرآن آب در روایات یعنی هر بار که نام آب برده شده یک زاویه دیگه نگاهی به ما داده یک بلد. زاویه اومده که مثلا این مثلا یه چیزا هست که آخرین لبنیاتی‌ها مثلا ماست و اجو ماست و خیار ماست ماس ماس و بادمجان ماست و بعضی‌ها مغزی دو ماست و بله بله طعم‌های مختلف تماعی رو بله. مختلف و هی قاطی کردن آره. یعنی هر دفعه اسم آب چه چیز قرآن میشوند. هم به طور سن قرآن هم که غایی تکرار می‌شه تو هر تکرارش یه نکته یه تو هر تکرارش یه نکته مثلا فروشگاه 20 تا فاکتور بهش میده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 به هر حال استغفار اثر داره کسی مثلا معدهش خرابه دکتر میگه دندون اتفاست ده خود مریضه میگه آخه دندون چکار به معده داره ولی اون میدونه که مثلا این دندون ممکنه زیر چرک کده بشه و این آب چرک مثلا چه اثری نمیدونه ما نمیدونیم میگه کسی استاده ادرار کنه فشار قبره زیاد میشه بغل ما نمیاد ربطیش چیه؟ به رابطهش نمیبرم. ممکن در آینده معلوم بشه. مثلا همین آب کر میگه این آب اگر کر شود آب کر به مقدار کر شود دست نجس بخوره توش آب پاکه. دستت هم پاک میشه. اما اگر یه مسقال از این کر کم بشه دستت بزنه توش هم دستت نجس میمونه هم آب نجس میشه ایه رساله علمیه تا الان هم کشف نشده ممکنه ست سال دیگه دوی سال دیگه یه پجوهش یه پجوهش کنه که اگر آب به این حجم و به این وزن رسید چجوری آب بیمه میشه که اگر یه مثال کم بشه دیگه اثر پذیره بله این رساله در آینده چی میشه نمیدوم چی میشه قرآن میلیون ها رسله دکتراتوشه میگه وطینه و زیتون چنین میگه وطینه و نخل وطینه و الانب خب دنبال این چیزا باشیم این نکات این پرسش این قرآن مال الان نیست قرآن میگه یز از شمس او خدایی که انرژی هستی رو تو جماعتات گذاشته تو این کلمات هم گذاشته ولی زیگه گفته در طول تاریخ همه تدبار کنن ای تو نیست که ملا صدرا پر روز یه جایی بودم یه جوانی یه چیزی گفت من جا خوردم و رفتم تفسیرم دارم نه نه نه ما تو تفسیرمون نیواردیم تفسیر بزرگارم دم دم نیست حال ممکن هرشم غلط بشه اما یه خوده جا خوردم که ای چه استفاده ای که از قرآن <تصفيق> گفت که یه پدر هشتا ساله ایدش مثل که رفته و از پله بالا مشکل دار شده و افتاده بود خب بعضی پیره پیره دست به مرده های همه فامیلام هم راحت می‌کنه بله گفت قرآن میگه که و من نو عمرهون و نکسو فل خلق کسی که پیر شد آروم بشینه تو خونه بعد میگه افلای عقلون عقل ندارن یعنی تو که پیر شدی دیگه کارهای چیز نکن اه. پیر شدی حال برف بروبد خب می‌رفتی تو برف وقت بود بچه‌هات هر شب شیفتی بیان پلوت بخوابن وقتی پیر شدی میشین دیگه نمیگه اولای عقلون میخواد یک تکیه گفتم پیر شده بیشین گوش بده اگر پیر پاشو دست به یک کاری زد این نردمانی رفت بالا رفت برد بکنه دست به یک کارهای زد خب اصباب درد میشی اصباب در افلای اقل میگفت چون ادست باباش ناراحت شده بود اینجا افلای اقلون بود بل. من در یه لحظه رد نکردم و خندیدم ولی به تفسیر مراجعه کردم نه آیهش منش اینیست ولی بلاخره جرقه ما باید به هر حال کلمات قرآن خلصا باید درو همه سید یا دیگه نگاه کنیم نگاه کنیم چرا اسم یازدت و میوه تو قرآن اومده؟ چرا بیشترین اسم اسم خورماست چون جزیل ترم محل خورما بوده؟ خوب. چرا اسم خورما؟ چرا بعضی میوه ها مثلا ای شماره اومده ای شماره نیمده؟ اسم مهندسی قرآن چرا یاکنه بود قبل از اینه از عذاما سوال میکنه در نماز اولش الله اکبر 4 تا میگیم. بعد از الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، اشرک و اشرک، هیا ل فلاح، هیا ل، همش جف جفته. این اول الله اکبر 4 تا است. چرا اولی 4 تا بعد جف جف میشه؟ امام فرمود اول از اون چون شما هنوز در جریان نیستن نیاز به تکرار منطقه وقتی تکرار شده در مردم در جریان قد دو دوتو بسه بله از امامورزان پرسن چرا نماز صبح و مغرب رو بله بخونیم نماز زور یواش میفرماد زو صبح و مغرب تو تاریک روشنه داد بزن ولی زور هوا روشنه میبینه نیاز نیست. داد خب این مثلا همین آب در آداب خوردن آب میگن آب را بمکید این چیه یعنی تو دهندت گرم میشه بعد برای خورد آب یخ قرد قرد قرد قرد قرد, قرد. آب یخ میده زیر معده حدیث داریم پیغمبر که آب میخواد همین. با تعنی و با آروم میخواد میگفت میمکید خب این مسئله مهمه که آب یخ انسان انتان بارده یا مثلا نشسته خوردن آب سفارش چند جرعه خوردنش سه خوردن بله و هر دفعه هم که میخواد یه بسم الله میگو بسم الله الرحمن الرحیم میخورد بعد میگوه الحمدلله یعنی این قدردانی از آب بهداشت آب حضرت دید یکی سی رفته تو یک آب آشامیدنی قسم می‌کنه. این آب آشامدنیه چرا آب آشامیدنی رفته تو شنا میکنی جمله اینه لا تفصد علن ناسه ما اهم آب این مردم فاسد نکن این به درد محیط زیست <تصفح> حضرت امیر دیده کسی با خاک کوچه داره تیمم میکنه فرمود چرا با خاک کوچه تیمم میکنی؟ نها امیر المومنین این یتیم ممر رجل به تراب بن اثرت طرق. حضرت امیر فرمود با خاک کوچه تیمم نکنه کسیفه قرآنم میگه تیم ممکنی سعیدن طایبا فا تیم ممو سعیدن, سعیدن طایبا یعنی آب خاک, خاک دلپسند حالا اگر سعید از سعود باشه یعنی خاک دامن کوه خاک سربالای، نه خاک تو درده که کسافت و آشغالا ها هل میخورن دوبش سعید اگر از سعودم بگیریم شاید یعنی نمیشه زمین های دست نخورده, نخورده. نخورده. بر سعیده، باید طیب یعنی چه؟ طیب دلپسند بعد هم به چشمات به مال طیع امم اینه بزنیم به که تمیز، به پیشونه بولیم، ها؟ ها؟ چشمان بولیم، چشمان سالمه ها؟ ایتی اممه ما دست بولیم بخواه که خوچه باید همچه میکنیم بعد او آقا میگه آقا، آخی بهداشته نیست بعد عمل میکنه همینطوره بعد عمل میکنه داریم نماز میخوایی بخونی؟ به جا سعزت فوت نکنی ها. چون خاکش میره تو حلقه کسی که بقلت وایسیده میگه اگر میخوایی بره روز جمعه، نماز جمعه از شب جمعه پیاز نخور ممکنه بوی پیاز تو دهنه بمونه فردا زور هر که بقلت وایسیده عذیت میشه جارب جا برای هر چیزی ما ی آدابی داری؟ خیلی ازش یه وقت مقام معظم رهبری فرمود سبک زندگی مدام در و دیوار هی میگن سبک زندگی <تصفح> از ما بودم کنم مثل کل دین سبک زندگیه اصلا کجای سبک زندگی نیست کجای سب... سبک زندگی نیست تمام روایات ما تمام روایات ما یه پدر پسر آمدن مهمان امیر المومنی شدن حضرت امیر دست پدرش پدرشوست ظرف آمد پدر بسر به امام مو تو هم دست پسرارو بشور. بعد به پسر گفت تنامین مدی خونه من دست طورم من تو هم می‌شستم. ما چون پدر پسر با هم اومدید پدر دست پدر رو بشوره، پسر دست پسر این سلسله مراتب بعد رعایت بشه. رعایت با باشه. این خیلی قشنگه. مثلا به ما گفتن سر کنید لباستون سفید باشه. یعنی یه لک شد ما بفهمیم. ما به عکس می‌گیم لباس خوبه. یا سرمه باشه یا قویه یا مشروع شد که هرچی چرک شد بیده نباشه اسلام میگه لباسی بپوش که بفمی کسیف شده ما میگهیم لباسی بپوشیم که نفهمیم فمی کسیف شده معلوم نباشه در دسترش معلوم... کمتر باشه, باشه. ببینید استش ما خیلی چیزامون برحال بهداشت آب بهداشت آب وقت آب رودخونه که سالم باشه سالمتر از آب چاس آب رود خونه بله چون حدیث داریم آب هرچی به سعی بخوره در جریانش هرچی به سعی بخوره این برای نوشیدن گواراتر از آبیست که از چشمه بجوشه و حتی آب جاری بهتر از آب راکده آب آبشار بهتر از آب غیر آبشاره و ما این مسکوب این من واقعش بالای نیم قرن آخوندم و پونز ازالگیه داره باشدم الان در آستانه هفته سالگیه خدا حفظتون بکنه شاد. بیدی واقعش هنوز حدیث میشونم خجالت بکشم نچشیدین ما مزه دین را آب دادن به حیوان به قدر ارزش داره که حضرت موسا بوزغاله های شعب را آب داد فسق همه برای دختار شعب این آب دادن حتی به حیوان میارزه برای که حتی اگر شما آب داری و سگ هم تشنه شما حق نداری بوزیگیری. بعد آب رو برای آتش سگ بذاری تيامام کنه. خیلی قشنگه. اینقدر دقیق و اینقدر ظریف. من میگم ناخونت بلنده شیر ندوش، ممکنه ناخونت بلند بشه پستو نگاه وضعیت کنه. و اگر حیوان چموشه زنگاله سرش کن اما اگر چموش نیم منگل سرش کن زنگاله آهنه منگل از این پارچه و ایناست که چون اگر حیوان عذیت نمو چرا با گوشخراش زنگاله سرش میکنی؟ یا اگر حیوان خوابه شکارش نکن اگر حیوان بی داره رو روبرو حیوان سرشو نبارو زبهش نکن چون به مقداری که شعور داره به مقداری که درک داره ازیت میشه رو روبرو هیوان سر نباردید قضای شما یا باید مستقیماً سرزی بشه یا اگر گوشت مخوری گوشت رو که او هیوانه سرزی خار باشه <تصفح> یعنی یا مستقیم بدن شما با سرزی ها رابطه داشته باشه، <تصفح> <تصفح> یا اون هیوان رابطه داشته یا او هیوانهه علف خار باشه بله هیوانه گوشت خار گوشت شرم باشه رابطه ما با سبزیجات یا مستقلیم یا اگر واسطه های یه واسطه شوشید از که از این مسئله دقیقتهای که شده توجه به آب توجه به خاک شما میدونی که اگر خدا خاک هایی طور قلب نمیکن ما چقدر باید پول تسخیه بدهیم عجب تسخیه خونه زیر پامونه اینجا آب کسیف میره پایین چند متری آب زلال میاد داره زباله فورو میره زلال میاد så vad är det? Zola, det är min, av det för det. Tack Har inte varit, det är ett tacky, av det är ett fullbadigt. Tack för det. Här är det samma det är نگاه کنیم به این نمینا... نعمتو سرسری نگیریه. این نگاه کردن خیلی کمک میکنه با توجه به یعنی... سرگذشتمونم که اسراف بود این نگاهی که ابتدای برنامه شما به آب داشتید این خودش واقعا کمک میکنه که ما حتی یه لیوان آب رو هم هدر, هدر ندیم. برای. برای. حال نگیم و درس زندگی بگیریم. چون الان فردا انشالله به لطف خدا باران باران دیگه هم زیاد شد. انشالله. حالا اگر با نگیم خب حال حرفه مال وقتی بود که آب چمبو. کم بود صد تا پر شده آرزو کنم که اصلا اگر شما میلیاردر شدی میتونی 1 ریال دور اندزی؟ سوال. یه کسی پولدار ترین مردم کره زمینه. خب شد. حرام اگه 1 ریال دور اندزی. از باب اسراف. از باب اسراف. ایتون نیست که حال که دارم حق دارم. حتی اگر اب فرعونم شد. ان شاء الله شد بازم اسراف در آب سر جاش مونده. در هر چیزی دیگه بلد. بسیار این توجه به نعمتها و دقیقت در نعمتها و بهرگیری صحیح از نعمتها اینها و شکل نعمتها ما نمیفهمیم اخیران ما به اینجا رسیدم بلد. اول میگم خدایی بره نعمتهایی که نمیفهمم بعد میگم بره نعمتهایی که نمیفهمم چون نعمتی که نمیفهمیم ملیارد هاست ونه مدتی که میفهمیم خدا چهش با مسلمانها گوش با دست پا مسلمانها آبرو داریم زبون داریم زنده هستیم سالمی. یعنی زمان سخت و دیوستی بیشتر نی. ولی نمادی که نمیفهمیم. بله خودش کل نوشتیم. این قرار تو آسمان چه جوری تعریف که این همه ستاره در حال حرکت یکیش تو کلمانه باید. و چنین میشد قرآن, قرآن میگه که هم اگر بخوام بارون میفرستیم هم اگر بخوام حاصب یعنی سایر زمی یعنی همین خودهایی که آب نرم رو میزنه تو کلد میتونه سنگ ریزم بزن بزنه بزن هم حاسب با داری هم ما ها داری ای تو اونیست که حال قرآن میگه اگر بخواهم این آب رو لجعنا ها اجا جا بخواهم آب رو تل خشم حال بکی تلگاه رو بگونی شیر نشکم آب یه نعمه تا سیراب شده نه من هم یه آب ممکن آب با شهر چه بخونم سیراب نشم داشتیم آدم که هر چی میخورن سیراب, سیراب شدن نعمت آب یک نعمته سیراب شده انسان با آب هم یه نعمت, یه نعمت دیگه وقت محیط زیستی که خدا تعین کرده تو دریا این همه ماهی میمیره چطور آب آقای نوسا بدبور نمیشه این نهنگا همه ماه مردار میخوره یعنی یک شهدار قوی تو دریا برای جمع کردن عشقال های دریا، زباله ها یعنی هم دریا فرید، هم موجه فرید هم بهداشش رو کرد هم بعد حاله این آب بالونی که میادیگر رو زمین وایسته، باز فشلی فسکن نهو از قرآن میگه این آب رو تو زمین ذخیره کردن برای شما آب برای شما ذخیره کردن، این برفی که میادی هندونی تا به سنو منسان چون این برف خدا تو کوها بایگانی میگنه چون اگر کوها بود زمین صاف بود امروز برف می افتم فردا همه آب میشد <متحد> اما لابلای در راه برف و ذخیره میکنه به تدریج آب <متحد> میشه <شود. متحد> تا این آب بشه بیاد هندونه تابستون ما بشه این خدا یا این برفی که میاد هندونه تابستون ما بنزا ما نمیشه حسابشو بکنیم ما اگر نعمت ها خدا مع... معشوق ترین آدما معشوق ترین موجودات بر اوم خداست چنون عاشق خدا بشین و روم نمیشه بی منته جای قرارتی برای برای. اون نمیشه که ای همه خدا چیزی بداد شما یه دارکت نماز نمیخوای برش بخونی یک کشاوست فکر نکنه که بالاخره حالای گندم ولو خودشه گندم ولو خود ده کشازه ولو خودته اما توانت از کیه خورشید از کیه زمینش از کیه بادش از کیه باد و عبر و خرشید و پونزد کلو یکیلوش یک زکات بده خمس لخ امیدهی لخ میری بین دوتلوخ تا فکر نکن پول مال توه آدمی که به فقرا کمک نکنه اینو باید احساس کنه که من که به فقرا کمک نمی کنم یک گاو هم من تا گاو صندوق ها آهنیه من گاو صندوق گوشتی هم <تصفيق> یعنی کسی که داره و فقیر را میبینه بخیاله یک گاو صندوق گوشتیه بعدم قرآن میگه پول داغش داقش میکنیم بیذاریم تو پیشونیش و پهلوش فتوک و واباها جباه جباه جبهه یعنی پیشونی فتوک و باها جباه هم و جنوب جنوبم هم جنبه فلز رو داغ میکنیم میداریم به پیشونی پا میگیم هازا ماکنستان ای پولای بود کسی پارده بودی ای پولای کی بود؟ الحمدلله کسانی که پسراشون رو دومات کردن دختراشون عروس عروض کردن دیگه سه چهارم 80 90 درصد عمرشون هم گذارندن. وقتا معلوم هم نیست چه بگیم بره پی دی قرآن دی قران 14 مرتبه کریم بغدتان گفته نه نه آدم قبر است که میره عکس جمون بیش از پیراس بر آخر حال اشغال داره شما یا جمون براش ایجاد اشتغال کنیم بیا با پول دیابومی بده یه ایجاد اشتغال کن یه دخترو جاهز بده چیزیه بده بله, بله. و نمیذارید سن بالا بره بعد ما اگر بیدونیم خورسته... آخر به قرآن یه آیه دارم میگه مما آتاکم الله یعنی خدا بدده رزقکم الله خدا بدده یازده تا آنپول پیدا کردم تو قرآن بله. که به آدمای های خدا هی آنپول مزنه بلکه ای پروشه بده یک آنپول اول متا دنیا قلید خیلی نچست چیزی نیست قلیل دوم میگه تو خریدی خدا هستی آخر دل الارض به زمین چسبیدی بلکه بالکه تکونی بخوره آمپوله سوم و یوسرون علو انفسام دیگران دادن تو چرا موندی آمپوله چهارم ندی تو دنیا زد میگیرم ما ببی تصمیم گرفتن از اون میوه باغ ندن خدا باقشون آتش دن آمپوله چهارم فضایی خلفو بده جاشو پر میکنم نه ترس اوهای یخنف فوق آمپول ششم هازا ماکنسن قیامت یازده تا آمپول میزنه خدا که برکی افرادی که متوکلن اهل سخاوت اهل سخاوت اه. 11 تا آمپول البته 11 تا ما پیدا ندارم سوادی ندارم امیدواریم که خداوند دستمونو بگیره کمتر از آن اینمون رو به خودمون واگذار لکنه الایه وقت آه. قران شد بله به قرانمون رسیدیم و ان شاء الله برگردیم باز هم خدمت بیننده ها رو خوبمون واژه قرائتی عزیز باش باشیم امروز صفحه 523 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست آیات پایانی سوره مبارکه زاریات و آیات ابتدایی سوره مبارکه تور باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم صلی علی النبی و آله الاطهام Allahumma salli ala nabiyy wa alihi l-Ataha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين och vad har de skapat, jennen och människan, om inte att uridu ägnar sig till att tillhandahålla vad jag vill från dem och فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِينَ يُوَعَدُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المغفور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من داقع يوم تنور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون Jomma, de är alla جهنم Jannah. هذه النار التي كنتم بها تكذبون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یک سلام هم بگیم هممون به امام رئوف امام رضا علیه السلام به ان زیارت مشهد الرضا نصیب همتون بشه ان شاء الله خب اجازه قرائتی نکته قرآنی امروز رو بشنوید و بعد هم ان الله خدمت شما باشم این صفحه که خونده شد میگه فضاکر فا این از ذکراتن فا المؤمنین بر یعنی تو تذکر بدی تذکر در مؤمنین اثر داره چون انسان فراموشکاره گاییم خدا رو قبول داره داره ولی نست الله خدا رو ایمان به خدا داره اما فراموشم. فراموش میکن. آدم گای فراموش میکنه مثل از هم گایی اسم بچه فراموش میکنه نسو الله قیامت قاب در بین نسو یوم حساب نمیگه لا یؤمن بیوم الحساب لا یؤمن بالله میگه نسو یعنی غافل میسه هم قافل میشه قافل میشه فراموش می <تصفيق> کنه که نیاز به تذکر هست و انسان همیشه نیاز به تذکر داره یکیشی ضرب زغال بخره گفت زغال کی روشه گفت دو نخ داره نخ بالا جرون نخ ارزو گفت چه دو رقم نخ گفت برای که اونا که نرخش گرونه ذغال یه نفریه. اونایی که عرضونه ذغال دو نفریه. بیشتر گیت شد. کوف یه نفریت چیه دن؟ گفت ذغال یه نفره. اینه که وقتی روشه کرده و قاضیون گذاشته تا آخر میسوزه. ای گرونه ذغال عرضون ذغالی که یکی باد غریبش، یکم باد دائماً بادش بوده. <تصفيق> یه لحظه باد زنده بوده کنار نرخامو. این میشه دنفری. دنفری. یه عرضون. حالا انسان نیازی به تذکر داره. یگی گفتن هی صبح نماز بخون، زور نماز بخون، مثل دست. دست نمیشه گفت صبح شدستم. صبح شدستی از صبح تا زور به صد جا چجیده میشه. دو مت ظهر بشه، باز عصر بشه، باز شب بشه. یعنی تو که دست یگی گفتن هی نماز بخون، حدیث داریم نماز مثل نهر آبه. چه آدم روزی 5 بار خودشو بشوره، دیگه آلودگی در بدنش نمیمونه. فذکر فئن الذکرات تنفع المؤمنین. البته خب مؤمن که میگه البته بعضی هستند که اگر صد توم نسرد کنید قرآن راجب بعضی هم گفت و اینگر او کل آیاتن هر مجازه بنن اعراض میکنند و یقولو سهر و مستمد اگر کسی بنزینی باشه با یک کبریت آتش میگیره اگر کسی بنزین نباشه صد توم کبریت بزنی، روشن نمیشه اگر کسی بخواهد بپذیرت با اولین تذکر بعدم لازم این تذکر از شخص خاصی باشه. حرف حق با قبول میکنه حرف حق با قبول میکنه ولی او یه بچه حرف بزنه تو نوهی من هستی ولی حرفت درسته چشم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یه دل آماده میخواد بله یه دل, دل, دل, دل آماده میخواد بله بسیار در بخش قبلی گفتگون با جای قرارتی یا جای اشاره کردم به فلسفه احکام و نکاتی رو شما گفتید از روایات از حقایاتی که زمان ایما مصومین alleles هم سلام اتفاق افتاده بود شاید این سوال در ذهن ما و بیننده ها باشه که آیا واقعا باید ما فلسفه احکام رو بدونیم که به اونها عمل بکنیم یا اینکه نباید ما تسلیم محض باشیم اگر دونستیم دونستیم اگر ندونستیم هم که اتفاقی نخواهد افتاد ببین یه تجربه تاریخی یا تجربه روز بله الان روز چند میلیون آدم میرن دکتر تو دنیا میلیونها آدم مریضن میرن دکتر بله. دکترم میگه که این کپسولو هشت ساعت اون قرصو ششت این یکی رو چهار یا این نصف اونو تمامشو یا این دوتا قرص با هم. یا این قبل از قضا یا این بعد از غذا. دیدید یکی از این صدها میلیون آدم یکی به دکتر بگه آی دکتر فلسفه چیه چرا اون قرصه سفید اون صورتی چرا اون خط داره اون خط نداره چرا اون چهار ساعت اون ششت سا آدم غصه میخوره، بگه دکتوری که ده سال درس خونده هیچ کدوم از ما اجازه بخوادیم اون چرا بگیم؟ بگیم ده سال درس خونده حالا ده هم آبشو بگذیم میشه پنج سالا چون بین ترم و میان ترم و نبیدم تابسون و عید و جمعه و پنج هم ببو یعنی حفظه و دانشگاه هرکه چهار ساله دو سالش درسه دو سالش دانشگاه هستم. مثل گوشتی کبابی برد گوش دو کیلو چربی و, سخنه. و سخنه ما این دست ها که تو دانشگاه هستیم یا تو اوزه هستیم تلفاتش رو هذف کنیم این تلفات خیلی کار مهم میه. من جای چیزی بگم برای اینهای که از پار وقتا میشه استفاده کرد الان سیه چهار سال انقلاب شده تقریبا چه سال پیش آیت الله ازمای مکاره ما دعوت کرد. گفت میخوایم از وقتای تلف شده تفسیر بنویسیم اوتیم وقت تلف شده گو چهارشنبه شوم خوزت هتیله پنجشنبه صبح جام تا تابه سون هر و خوزت هتیله چه میشیم یا عیاری بنویسی ما هفت سال از پارا وقتها خدمت ایشون بودیم و تفسیر نوشتیم و تفسیر نمونه درو من بیش از هفت جد چقدر مونده گاروان؟ حدود چه سهصدات بار نمیدن، دقیق نمیدونم حدود 700 بار شاید تاب شده باشه به 12 دوونه دنیا ترجمه شده و شاید بهش گو بحثیم تفسیر فاضلی. از پاره وقت ما حالا باید استفاده کنیم. ببینید این زنهایی که ارزه دارن از پوست پرتوال مربع درست کنند بلی زنهایی که ارزه ندارند برنزه درشت هم کفتش میکنند ما باید استفاده خوبی بکنیم و حسن رزقی منت تلف در دعای مکارم اخلاف بگید خدای این چیزهایی که بشیم دادی حرومش نکنم حرومش نکنیم. جوانی رو حروم کردیم یه مقداری ها. باید مواضح باشیم استفاده بهینه بکنیم از امکانات، از آب، از نان، از خاک، از برگ، از جوانی، از دقیقای عمر، از قلم، از کاغذ حضرت امیل میگه سر قلمت تیز کن، سطرهای بنویس بنویز بیتولمال اقدر ظرفیت نداره که تو ای رقمی کاغذ مصرف کنی خدا میدونه مصرف کاغذ ما در ایران چقدر زیاده اسراف اسراف داشتم نمی‌فهمم داوود پزشکا چند سال درس می‌خونم ما نمی‌پرسیم می و ما نمی‌پرسیم چرا قرص سبز و سفیده واخه تو به خودمون اجازه میدیم به علم بی‌نهایت خدا به علم بی‌نهایت خدا میگیم که دلیل این چیه ما چیه برات نیستیم ما باید عمل کنیم البته تحقیق بکنیم ممکن در آینده بفهمیم ممکن نفهمیم بسیار خوجا گراتی خیلی ممنون متشکرم از شما ببیننده های خوبه اونها جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم این شاید خدا یا به آبرو یه همه آبرومندان در گاه انبیا و اوسیا محمد و آل محمد اللهم صلی الله علیه محمد, محمد, محمد. محمد آقابت ما رو ختم بخیر کن دنیای ما رو با عزت تأمین کن آخرت روز طرف رازی ما قرار بده معرفت در مودت مادت و اطاعت خود تو و روز بروز در ما شکوفاتر بیشتر عمیق تر و نسل ما را تا آخر تاریخ بهترین مؤمنین و مؤمنات قرار بده. و سلام علیکم احمد الله. سلامت باشی. خیلی ممنون متشکرم. امروز روز روز 5 سال روز تاسیس بسیج مست و روز بسیج فرزندان رشادت های همه بسیجیان هم هستی جای قرائتی. هم در دوران دفاع مقدس و هم Både under denna period, insåg jag att de alla har varit mycket lyckliga och lyckliga. De har alltid haft och positivt intryck av det. De har alltid haft en positivt intryck av det. De وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما أجعله الله آخر العهد من نيل زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين